فصل هفدهم. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده حیات جاویدان دهد، این است، حیات جاویدان، کانها تو را خدای واحد حقیقی و ایسای مسیح را که فرستاده تو است بشناسند من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم. و ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده. همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم، من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم آنان متعلق به تو بودن و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها میدانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است زیرا کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند آنها این حقیقت را می که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرست ای. من برای آنها دعا می‌کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمیمانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می‌آیم ای پدر مقدس با قدرت نام خود کسانی را که به من دادهای حفظ فرما تا آنها یکی باشند همونطوری که ما یکی هستیم در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ از آنان حلاک نشد جز آن کسی که مستحق حلاکت بود تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد ولی اکنون پیش تو میآیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند من کلام تو را به آنان رسانیدم اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند جهان از آنان نفرت دارد به درگاه تو دعا میکنم نه برای اینکه آنان را از جهان ببری بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی همانطور که من متعلق به این جهان نیستم ایشان هم نیستند آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند فقط برای اینها دعا نمی کنم بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد. تا همه آنان یکی باشند. آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم من در آنان و تو در من تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم که سانی را که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند. تا جلادی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو نسبت به من داشتهی در آنها باشد و من هم در آنها باشم.